این داستان توتی شاهزاده بازرگانی دختر بسیار زیبایی داشت به حدی که پسر پادشاه و حتی عموی پیرش که به عنوان ولی عهد کشور را اداره میکرد عاشق اون بودن شاهزاده مردی متین و دوست داشتنی بود برعکس اموش آدمی حقه باز و پلید بود که در عالم خیال خودش رو همسر اون دختر میدونست و برای رسیدن به این هدف به هر کار ناشایستی دست میزد. شاهزاده شب و روز به دنبال فرصتی بود تا دختر را از نیات شوم با خبر کنه. بنابراین در انتظار نشست تا بازرگان خانه و کاشانه خودش رو ترک کنه. بعد از مدتی یکی از ندیمه های پیر قصر سلطنتی به آشفته حالی شاهزاده پی برد آستیناش رو بالا زد تا کمکش کنه. شاهزاده تمام داستان را تعریف کرد. ندیمه پیر گفت این که مسئله مهمی نیست تو نباید اینقدر ناراحت باشی. فردا پیش من بیا تا ای بیاندیشم اون وقت میبینی که همه چیز به خوبی و خوشی درست میشه. روز بعد شاهزاده نزد ندیمه پیر رفت. اون با یه دسته پر در انتظارش نشسته بود. پرها رو به شاهزاده داد و از اون خواست اونا رو توی دستاش بماله. مالیدن پرها همون و بیرون پریدن یک توتی از داخل اون همان. ندیمه پیر توتی رو روی شانش گذاشت و به در خونه بازرگان رفت. بازرگان در حال خداحافظی با دخترش بود و به اون سفارش میکرد که از خونه بیرون در نیاد و در رو هم به روی هیچ کس باز نکنه حتی اگر ولیه باشه. دختر قول داد که توصیه پدرش رو آویزه گوشش کنه ولی از این که با رفتن پدر تنها میموند رنج می برد و از خدا میخواست کسی رو با اون هم کلام کنه. حتی اگر اون یه نفر همون توتی باشه که روی شونه اون پیرزن نشسته. بازرگان پنجره را باز کرد و از پیرزن پرسید که توتی رو میفروشه یا نه. پیرزن گفت بله چرا نمیفروشم؟ مدتی بعد توتی روی میلی در اتاق دختر بازرگان نشسته بود. بازرگان باز هم به دخترش یادآوری کرد که بیرون نرو و در رو هم به روی کسی باز نکنه دختر با توتی توی خونه تنها موند حالا دختر حوصلش سر نمیرفت اون اونقدر زیبا و عاقلانه حرف میزد که انگار یه آدم داره حرف میزنه با تاریک شدن هوا و رسیدن اولین شب دوری بازرگان از خونه توتی به دختر بازرگان گفت حالا برات افسانهای زیبا تعریف میکنم اینجا بشین، خوب گوش کن و حرفم رو قطع نکن وگرنه داستان رو تا آخر نمیگم. متوجه شدی؟ دختر گفت: فهمیدم توتی جون، من همینجا کنارت میشینم و تکونم نمیخورم تعریف کن. اون وقت توتی داستان رو تعریف کرد. بازرگانی دختری داشت مثل تو دختری یکی یدونه دونه که نه داشت و نه برادری. به همین خاطر همیشه تنها و غمگین بود. عمه دختر که اون رو مثل جونش دوست داشت تصمیم گرفت اون رو از تنهایی نجات بده. بنابراین عروسک زیبایی به اون هدیه داد. قد و قامت، موها، چشما و حتی لباس عروسک دقیقا شبیه اون دختر بود. به حدی که تشخیص اون دوتا از هم سخت بود. پس از اون دختر دیگه غمگین نبود. عروسک رو همیشه همراه خودش داشت. با اون غذا میخورد. با اون بازی میکرد و زمانی که با درشکه به گردش میرفت اون رو با خودش میبورد. از غذا روزی از روزا که دختر با دروشک به گردش میرفت راه زنا راه رو به اون بستن. چی رو کشتن و دختر رو هم با خودشون بردن ولی عروسک توی درشکه باقی موند. راهزنا دختر رو تو دل جنگل رها کردن تا طعمه حیوانات درنده بشه. ولی اون زنده موند. شبا روی درخت می‌خوابید و روزا هم در فکر نجات خودش این در و اون در می‌زید. سرانجام دختر بازرگان از جنگل بیرون اومد و به شهر کوچیکی که اون نزدیکی ها بود رسید و تو دربار حاکم اون شهر مشغول به کار شد. ادب و کاردانی اون باعث شد تا همسر حاکم شهر اون رو بر خدمتگزارای دیگه ترجیح بده و این امر به خدمتگزارا برخورد و آتیش حسادتشون رو برانگیخت. و نقشه قتل اون دختر رو کشیدن. یکی از اونا در وقت مناسب نزد اون رفت و گفت میبینم که زن حاکم تو رو خیلی دوست داره. حالا برای اینکه علاقش به تو بیشتر بشه از حال و احوال پسرش بپرس. یک ساله که از پسرش خبری نداره. زن حاکم خیلی خوشحال میشه که کسی از پسرش با اون صحبت کنه. ولی این توطعه بود، زیرا اگر کسی با زن حاکم در مورد پسرش بحث می کرد و اون رو به یادش میآورد فوراً به قتل می رسید. متاسفانه گذار تازه وارد بیخبر از همه جا حرف همکارای حسود خودش رو باور کرد و روز بعد در حضور زن حاکم از شاهزاده گم شده سخن گفت. مسئله که باعث شد، رنگ رخساره ملکه مثل مردهها سفید بشه و نگهبانان رو احزار کنه تا دختر رو توی مخوفترین زندانهای قصر زندونی کنند. دختر بیچاره که نمیدونست به چه جرمی سزاوار چنین مجازات وحشتناکی شده تمام روز و شب رو توی سیاه چال سرد و تاریک بر روی کاه نشست و گرسنه و تشنه تنهای تنها گریه کرد ناگهان در نیمه های شب صدای بلندی توجهش را جلب کرد چهار چشمی همه جا را نگاه کرد توی نور بسیار کم زندون از هم جدا شدن دیوار سیاه چال و ورود پنج نفر را با چشم خودش دید چهار نفر مثل جادوگرها های بلند و پاهای شبیه پر داشتند و پنجمین نفر که توی قل و زنجیر بود جوانی خوش قیافه و برومند بود که با ملکه مونه میزد. تو این لحظه کسی در زد توتی داستان رو قطع کرد دختر بازرگان گفت کی اونجاست صدایی به گوشش اومد که می گفت پیکی اومده که نامهی برای شما داره لطفا در رو باز کنید دختر گفت الان نمیتونم در رو باز کنم وقتی پدرم برگرده اون موقع بیایید. دختر که کنجکاف شده بود تا دنبالی داستان رو بشنوه از توتی خواست اون رو براش تعریف کنه. توتی هم ادامه داد. روز بعد ملک بر کرسی قضاوت نشست. وقتی دختر در برابرش ایستاد باز هم از شاهزاده سخن گفت. اون گفت: ملکه محترم، پسر گم شده شما زنده است و توی همین قصر در اصارت چارت جادوگر پلید زندگی می‌کنه. اگر دوازده تا سرباز شجا در اختیارم بذارین، من اون رو نجات میدم. دختر داستان سیاه چال رو مو به مو تعریف کرد. ملکه از خوشحالی بال درآورده بود. به دختر قول پاداش فراوون داد و بلافاصله دوازده تن از سربازان شجاع رو در خدمت اون دختر روانه سیاه چال کرد. نیمه های شب دیواره سنگی زندان دوباره از هم باز شد و چهار جادوگر و شاهزاده وارد شدند. به محض ورود اونا به سیاه با اشاره دختر سربازا به سر جادوگرها ریختند و در یک چشم به هم زدن همه اونا رو کشتند و شاهزاده را آزاد کردند. ملکه با دیدن پسرش اونقدر خوشحال شد که نیمی از کشور رو به دختر هدیه داد و اون رو به همسری فرزندش انتخاب کرد. در این زمان باز هم پیک ولی عهد در زد دختر بازرگان گفت این بار میرم در رو باز میکنم باید بدونم که پیک حامل چه پیامیه داستان تو هم که توتی جان به سر رسیده توتی جواب داد نه تازه اول قصه است اگر تو حرف پدرت رو گوش کنی فردا بقیه قصه رو برات تعریف میکنم. کنم و چنانچه در رو برخلاف نظر من باز کنی دیگه چیزی برات نمیگم. دختر بازرگان که مشتاق شنیدن بقیه افسانه بود از جاش تکون نخورد و به دنباله حرفهای حرف توتی گوش کرد. توتی گفت همونطور که گفتم ملکه تا پسرش رو دید از شدت خوشحالی تصمیم گرفت دختر رو به عقد شاهزاده در بیاره. و نیمی از قلمرو حکومتش رو به عنوان جهیزیه به اون بده ولی دختر حاضر نشد به همسری شاهزاده در بیاد و تنها کیسه پول و یک دست کت و شلوار مردونه برداشت خودش رو به شکل مردا در آورد و از اونجا دور شد و رفت و رفت تا به شهری بزرگ و ثروتمند ولی ماتم زده رسید پسر پادشاه اون دیار از یک سال پیش بر تخت بیماری افتاده بود و کسی هم از عهده مداباش بر اومد. روزها حال شاه چندان نامناسب نبود ولی نیمه های شب تا صبح آه و ناله سر و هزیون میگفت. انگار که نفسهای آخرش رو میکشید. دختر که از ماجرا باخبر شده بود توی لباس مردون نزد پادشاه رفت و گفت ای پادشاه من پزشکم و از بیماری پسر شما باخبرم اجازه بدید شبی از اون پرستاری کنم شاید بتونم اون رو مداوا کنم پادشاه از پزشک جوان تقدیر کرد و با وعده اعطای پاداشی شاهانه به اون اجازه داد تا مداوای فرزندش رو به عهده بگیره. شب هنگام که شاهزاده به خواب رفت، دختر بر بالین اون حاضر شد و تا نیمه های شب در انتظار نشست تا شاهزاده راحت بخوابه. ولی با رسیدن ساعت دوازده و نیم شب ناله ها با هزیون ها شروع شد. انگار که عمرش به پایان رسیده. دختر تمام گوش کنار رو زیر و رو کرد تا علت بیقراری اون جوون رو پیدا کنه. ولی همه چیز عادی بود. ناگهان نوری که از زیر تخت می درخشید توجهش رو جلب کرد. انگار چراقی توی اونجا روشن بود. دختر بلا فاصل تخت رو کنار کشید. در کف اتاق یه در بود و در زیر اون یه پله. تو این زمان کسی در زد و توتی حرفش رو قطع کرد. دختر بازرگان گفت کی اونجاست؟ در پشت در خانم پیری بود که می گفت اونه و با یه نامه پشت در ایستاده بود. دختر که بی سبرانه در انتظار دنباله داستان بود تا ببینه بر سر دختر چی اومده از طرفیم هم می ترسید که اگر از جا بلند بشه توتی داستان رو قطع کنه خیلی سریع و خلاصه گفت من امه ندارم هر وقت پدرم برگشت بیا پس توتی دنباله داستان رو گرفت اون گفت هنگامی که دختر از پله های پشتی به پایین میرفت به راهروی درازی رسید در ته راهرو آتشی فروزان به چشم میخورد کنار آتش پیرزنی نشسته بود که چرت میزد در داخل دیگی بزرگ هم غذایی قلغل میزد و سر میرفت دختر پاورچین پاورچین نزدیک و نزدیک تر شد تا ببینه داخل اون دیگ چیه؟ با کمال تعجب قلب یک نفر را دید که در حال پخته شدنه. پیرزن جادوگر بود و اون قلب هم قلب شاهزاده مریض بود. بیدرنگ با دستای خالی خود قلب را از داخل آب جوش بیرون کشید و آب رو بر آتش ریخت. جادوگر فریاد زنان بیدار شد ولی در تاریکی شب کسی رو ندید. دختر به اتاق شاهزاده برگشت. در را بست و تخت رو پشت اون گذاشت. دیگه کاری از دست جادوگر بر نمی اومد. حال شاهزاده رو به بهبودی رفت. دختر قلب رو در دهان اون گذاشت. شاهزاده اون رو قورت داد، بلند شد و خوشحال خندون نشست. شاهزاده چشماش رو به هم مالید و از اینکه دختری در برابر خودش می دید، ما تو مفقود بود پیش خودش گفت این چه پزشکیه که لباس مردونه به تن داره ولی ماش بلنده و تا پایین کمرش ریخته حالا دست دختر رو شده بود در حال فرار از راه روی زیرزمینی کلاه از سرش به زمین افتاده بود شاهزاده فهمید که اون دختر بازرگانه نه یه پزشک پادشاه پیر که از داستان باخبر شد خوشحال خندون به دختر گفت من قول داده بودم نیمی از کشورم رو به تو بدم. حالا علاوه بر این که تو رو به عقد پسرم در میارم تمام قلمرو حکمرانیم رانیم رو به شما میدم. تو این زمان دوباره کسی در زد و باز هم قاصد ولی عهد پشت در ایستاده بود. دختر بازرگان گفت این بار در رو باز میکنم. باید برم ببینم امم چی میخواد. داستان تو هم که به آخر رسید. توتی گفت خیر تازه به وسط داستان رسیدیم. اگر حرف پدرت رو گوش کنی فردا بقیه داستان رو تعریف میکنم. در غیر این صورت چنانچه خود سرانه در رو باز کنی دیگه از من چیزی نمیشنوی. دختر بازرگان که میخواست بدون کار دختر و کجا میرسه حرف توتی رو قبول کرد و از باز کردن در خودداری کرد. فردای اون روز سومین شبی بود که بازرگان خونه رو ترک کرده بود. دختر مثل شبهای پیش کنار توتی نشست و اون هم همونطور که قول داده بود ادامه داستان رو اینطوری گفت. یادت هست گفتم که پادشاه میخواست دختر رو به عقد شاهزاده در بیاره و نیمی از قلمروی حکومتش رو به اون عطا کنه ولی دختر با کمال احترام پیشنهاد اون رو رد کرد و تنها یه درشکه و کیسه سکه تقاضا کرد و در لباسی مردانه به دنبال سرنوشت به راه افتاد پس از مدتی به قلمروی سومین پادشاه رسید قلمرویی روی و ثروتمندتر از دو قلم روی دیگه. ولی توی اینجا هم مردم خوشحال و سرحال نبودن. اون کم کم فهمید که شاهزاده اون سرزمین هم مریزه و مداوای پزشکان بی نتیجه مونده. شاهزاده روزا مثل مرده متحرک این طرف و اون طرف می رفت و شبها تا صبح توی اتاق خودش تک و تنها گریه و زاری می کر. دختر بازرگان توی لباس مردونه نزد پادشاه رفت و گفت ای پادشاه بزرگ من پزشکم و از بیماری پسر شما باخبرم به من اجازه بدید یه شب پیش پسرتون باشم و بیماریش رو کشف کنم و بتونم اون رو علاج کنم پادشاه خوشحال از اینکه با پزشک جدیدی روبرو شده با پیشنهاد دختر موافقت کرد شب هنگام که شاهزاده به اتاق خودش رفت دختر بازرگان هم مخفیانه وارد اتاق اون شد و خودش رو پشت پرده پنهون کرد شاهزاده همه اتاق رو با دقت نگاه کرد زیر تخت و پشت کمودا ولی پشت پرده رو نگانه کرد. را نگاه نکرد خیالش راحت شد که تنهای تنهاست به سوی کمد مخصوص خودش رفت و اون رو با کلید طلایی باز کرد و عروسک بزرگ و زیبایی رو از اون بیرون آورد. این عروسک همون عروسکی بود که توی درشگهی که راه زنا درشگچی رو کشته بودن جا مونده بود. شاهزاده روز بعد از حادثه وقتی به شکار می رفت اون رو پیدا کرد و از همون لحظه مریض شد. زیرا در آتش این حسرت می سوخت، که چرا اون عروسک و آدم نیست تا باهاش ازدواج کنه؟ تو این لحظه کسی در زد. توتی حرفش رو قطع کرد. دختر بازرگان پرسید کی اونجاست؟ صدا صدای ولیعهد بود که پشت در ایستاده بود و میخواست در رو به روی اون باز کنن. دختر در رو باز نکرد و گفت من اجازه ندارم در رو باز کنم. پدرم به من همچین اجازه ای نداده. وقتی که از سفر برگشت میتونید بیایید و کارتون رو بگید. دختر که برای شنیدن ادامه داستان آروم و قرار نداشت مرتب به توتی میگفت توتی جون تعریف کن. توتی جون بقیه قصه رو بگو. توتی هم آخرین قسمت داستان رو گفت. به محض اونکه شاهزاده عروسک را از کمد بیرون آورد و بر روی سندلی نشوند دختر بازرگان از مخفیگاهش بیرون اومد و گفت این عروسک منه یه ساله که دارم دنبالش میگردم. دختر خم شد تا عروسک رو بغل کنه. کلاه از سرش افتاد و موهای بلندش پریشون شد. شاهزاده گفت تو همون عروس خانومی هستی که یک سال در انتظارش لحظه شماری میکنم. اون وقت دست دختر رو گرفت و بیماریش خوب شد. پادشا خوشحال از بهبودی پسرش به دختر بازرگان گفت من به تو که پسرم رو نجات دادی نصف قلم روی خودم رو میبخشم. علاوه بر این تو رو عروس خودم میکنم. در این لحظه دوباره در رو محکم زدند دختر گفت این بار دیگه در رو باز می‌کنم تا ببینم که ولیعهد چی می‌خواد تو هم که داستانت تموم شد توتی گفت نه هنوز یه چیز کمه دختر بازرگان گفت چی کمه قبل از اینکه توتی جواب بده صدای بازرگان از پشت در به گوش رسید دخترم در رو باز کن منم پدرت توتی گفت چیزی که گفتم درست بود حالا برو در رو باز کن اولین سؤال بازرگان از دخترش این بود که آیا در غیبت اون در رو روی کسی باز کرده یا نه دختر گفت نه من در رو باز نکردم توتی هم حرف اون رو تعیید کرد توتی از روی میله پایین پرید و به زمین نشست و به صورت جوون زیبایی در اومد. شاهزاده و دختر بازرگان جشن عروسی به پا کردند. روز سوم عروسی هم شاهزاده به عنوان پادشاه امور مملکت را در دست گرفت. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی